کشتن وزیر خیشتن را در خلوت بعد از آن چه روز دیگر در ببست خیش کشت و از وجود خود برست چون که خلق از مرگ او آگاه شد بر سر گورش قیامتگاه شد خلق چندان جمع شد بر گور او موکنان جامد دران در شور او کان عدد را هم خدا داند شمرد از عرب و از ترک و از رومی و کرد خاک او کردند بر سرهای خیش درد او دیدند در مان جای خیش آن خلایق بر سر گورش مهی کرده خون را از دو چشم خود رهی